انا أن ان محمدا عبده ورسوله <تصفيق> ونصلي ونسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وامته القاهرين صلى الله عليه وسلم سيما بقيه الله في الارضين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 توصیه به تقوای الهی میکنم، ایمان باور و اعتقاد به خداوند متعال است و تقوا قدرت و توان و التزام عملی به دین و خیشتنداری در برابر گناهان و نافرمانی خداست و ولذا تقوا مکمل ایمان هست. ایمانی که همراه با تقوا نباشد کامل و اثر بخش و مندگار نیست. ولذا در قرآن در موارد عدیدهای ایمان و تقوا با هم آمده ان. از جمله یا ایها الذین آمنوا اسبروا و ورابطوا و و الله لعلكم تفلحون مؤمنین، شکیبا باشید، دیگران رو به شکیبایی دعوت کنید، در جنگها پایدار و استوار باشید و تقوای الهی را داشته باشید که رستگاری شما به این رعایت تقوا همراه با ایمان بستگی داره. تلاش کنیم انشاءالله ایمانمون با تقوا توام باشه چون چنین ایمانی مطلوب، و مقبول خداوند تبارک و تعالی است. بحث تفسیرمون در این خطبه به آیه پنج سوره مبارکه ممتحنه بود که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست داشتن که ایشان و همراهانشون را از فتنه ای که برای ایشان در ارتباط با کفار و مشرکین پیش میاد حفظ کنم ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفرود عرض کردیم در قرآن کریم فتنه در معانی گوناگونی به کار رفته سخن این بود که کلام حضرت ابراهیم با کدام یک از این معانی تناسب بیشتری داره دو احتمال رو در خطبه های گذشته مطرح کردیم یکی فتنه به معنای گرفتار شدن به آزار و عذاب کفار بود دوم مبتلا شدن به بلاها و گرفتاری هایی که در پی آن کفار اسم مسلمونها زخم زبان می زدن به مؤمنین می گفتن اگه شما بر چرا اینقدر بلا و مصیبت می بینید خدا هم به شما کمکی نمی کنه. اینها رو در خطبه های قبل عرض کردیم اکنون به بررسی معنای سوم فتنه و تطبیق آن با کلام حضرت ابراهیم علیه السلام میپردازیم. یکی از معانی که در قرآن ذکر شده برای فتنه حاکمیت و سلطه کفار بر مؤمنین است خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم چنین سلطه و حاکمیتی را سریحا نفی و محکوم فرموده فرمد ولن چجعال الله للكافرين علالمؤمنين سبیل نسائ آیه ساده چهل و یک ولابن چنین سالتی رو هرگز برای کفار نسبت به مؤمنین قرار نداده سالتی کفار بر مؤمنین دارای انواع و اقسام هست سلطه نظامی سالتی فکری و فرهنگی سلطه اقتصادی سالتی اقتصادی و ابعاد مختلف ها آن قرآن همه این سلطه ها رو با این آیه که تقدیم محضر شد نفت کرده چون ظالمین اگر سنان چه بر جامعه مسلط بشن در پی تسلط اونها ها بدون شک بر ابعاد مردم و جریان فکری مردم تأثیر میگذارن فکر و فرهنگ جامعه رو سلطه کفار از بین میبره و منحرف میکنه و به سوی اهداف شوم خودشون میبرن اون جامعه رو به هر حال جامعه هم که حاکم بر او کافر و منافق و مشرک باشه خواه ناخواه تحت تصدیره چنین که قرار میگیره تا جایی گفتن الناس علا دین ملوکه هم جا دارد که مردم ما هم همچون حضرت ابراهیم علیه السلام که الگو و اسوه همه عالم هستند از این فتنه ویرانگر به خدا پناه ببرند و بگوین ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو ولی باید دانست که آن اسوه و الگوی عالم یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام برای گریز از این فتنه بزرگ یعنی سلطه و حاکمیت کفار و مشرکین تنها به دعا بسنده نکرد ولی قبل از دعا و همراه با دعا چند گام مهم و اساسی رو برداشتند گام اول اظهار براعت و بیزاری سریح از کفار و مشرکین در همان ابتدای کار بود قرآن درباره این اقدام حضرت ابراهیم در همین سوره ممتحنه میفرماید اتقالوا لقومهم ان ابراا منكم بما تعبدون من دون الله ما از شما و بت شما که به جای خدا اونها رو بپرستید به کلی بیزاریم و حضرت ابراهیم تنها به همین مقدار هم اکتفا نکرد بلکه سریحن با کسانی که تمایل به کفار داشتند، حاکمیت کفار را پذیرفته بودند، خودشون مشرک و کافر بودند، فرمود چفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العدا و البغوا و ابدا. و این حرکت حضرت ابراهیم، اسوه عالم، درسی ماندگار شد برای همه ها از جمله ملت قهرمان ایران. که از ابتدای نهزت و انقلاب تا به امروز نسبت به دشمنان دین و کشور خودش مثل آمریکا اعلام بیزاری و براعت کرده ایران اسلامی پرچم مخالفت با آمریکا رو برفراش گفت ما با تو دشمنیم تو از غیظ و غذب بمیر قل موتو به کم و دشمنی ملت ما با آمریکا نه به عنوان یک منطقه جغرافیایی و نه به عنوان مردم آمریکا بلکه به سیاست گذاران و دولت مردان و مافیای سهیونیزم حاکم بر آمریکا از عمق جان و با اعتقاد و تجربه و باور گفت که مرگ بر آمریکا گام دومی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای نفی سلطه و حاکمیت کفبار و مشرکین برداشت بت شکنی بود حضرت ابراهیم با سراحت اعلام کرد الا لاکیدن اسنامكم قسم به خدا درباره بدهای شما تدبیری خواهم کرد قرآن در باری تدبیر اون حضرت میفرماید فرماید جزادن جُزَادًا إِلَّا کبیرن لهم لعلهم لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ ابراهیم همه بطه ها رو شکست و قطعه قطعه کرد مگر بت بزرگ را تا پرستان در مقام شکایت به آن بت بزرگ مراجعه کنند و به چشم خود ببینند که از این بطه ها کاری ساخته نیست مردم ولایتمدار مدار ایران هم با تعصید به قهرمان توحید یعنی حضرت ابراهیم بودچکن با عزت و اقتدار به بدخانه و جاسوسخانه شیطان بزرگ آمریکا که برای دودمان پهلوی حکم یک بدخانه رو داشت و سر تسلیم و تعظیم در برابر استخیران آمریکا فرود می آوردن در سیزده آبان سال 1358 عملی کردن و آن جاسوسان در لباس دیپلمات را به جرم خیانت و جنایت علیه ملت ایران به گروگان گرفتند و این روز در تاریخ ملت ایران به روز مبارزه با استکبار جهانی ثبت شد گام دوم گام دومی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای نفی سلطه و گریز از فتنه حاکمیت کفار و مشرکین برداشت هجرت از سرزمین کفار بود چون حضرت ابراهیم انقدر نیرو و افراد نداشت تا بتواند کفار را از سرزمین خود براند ولذا خودش اقدام به هجرت کرد و به تعبیر قرآن چنین فرمود قال انما مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم سوره انکبوت آیه 26 ولی به فضل خداوند ملت وفادار و با ایمان و بدکار ایران رهبر بوتشکن خمینی کبیر را <تصفيق> و امام و رهبر خود رو تنها نگذاشتند مردم ایران با نثار مال و جان و جوانان خود انچنان بر حاکم ستمگر و خوناشام بیگان پرست خودشون یعنی شاه جلاد تاختن تا آن مرد به تعبیر رهبر معظم انقلاب تو خوره آمریکایی رو با ضلت و خاری از کشور فراری دادن مسئولان ما بدانند این که معروف شده است آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست اختصاص به بی اعتمادی آزادگان عالم از آمریکا نداره بلکه نوکران حلقه به گوش آمریکایی هم آمریکا رو قابل اعتماد نمیدونند شما نمونه های اخیر اون رو مشاهده کردی رفتار آمریکا با شاه خوان که راه نداد رو با آمریکا رفتار شاه رفتار آمریکا با صدام متجاوز و جلاد رفتار آمریکا با مسعود بارزانی فتنه‌گر همه رو به چشم خود دیدید اینها هم اعتراف کردند که آمریکا قابل اعتماد نیست به هر حال باید برای گریز از فتنه حاکمیت و سلطه کفار این گامهای اساسی ابراهیمی را برداشت آنگاه از سر عبودیت و تزدر به درگاه خدا ارشد ربنا لا تجعلنا فتنتن للدین و واغفر لنا ربنا إنك انتل عزیز الحکیم ان شاء الله ادامه بحث از تفسیر اسطوره مبارکه ممتحنه در خطبه‌های آینده ربنا لا تسلط علینا من لا یرحموننا وانصرنا علی القوم الظالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون فی دین الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان طوابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد, محمد.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 اللهم صل على خاتم الانبياء والمرسلين سیدنا و نبینا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على مولانا علي المؤمنین المؤمنين ووصي رسول رب العالمين صل على فاطمة الزهراء سيده نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وسل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ومسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والخجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه و على آباءه الطاهرين نتقربوا إلى الله بحبهم والبراءة من اعدائهم السلام عليكم يا فاطمة المسمحي يا بنت موسى بن جعفر و الله و بركاته عباد الله و نفسيب تقبل الله قرآن میفرماید یا ای الذین آمنوا تقوا الله و کونو مع الصادقین مؤمنین تقوا پیشه کنید و با صادقین باشید یکی از آثار و برکات تقوا این است که انسان متقی هیچگاه راه و رهبر خود رو گم و فراموش نمی‌کند پس در تحصیل تقوا و تقویت اون بکوشیم تا از امام زمان خود حضرت بقیت الله العظم مهدی آل محمد حجر الله تعالی فرجه الشریف شریف و در غیاب اون حضرت از ولی ققیه زمان من جدا نشویم. مناصبت های این خطبه 40 ابو عبدالله علیه السلام است که ان در پایان بان آن خواهم پرداخت. مناسبت اول شنبه 20 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. میدانید در فرهنگ اسلام از علم به نحو مطلق تعریف و توصیه نشده است، بلکه از علم مفید تعریف و تمجید شده. به عنوان نمونه از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که خیر العلم ما اصلحت بهی رشادک و شره ما افقدت بهی معادک قرر غرر کل صفحه 434 بهترین دانش آن است که به کار هدایت و رستگاری تو بیاد و بدترین علم آن است که آخرت خیش رو با آن تباه بسازی توصیه به همه جویندگان علم آن است که به دنبال علم مفید که نیاز ضروری خود و جامعه و کشورمون هست بریم مناسبت دوم سه‌شنبه 23 آبان روز حمایت از بیماران کلیوی و نیز روز جهانی دیابت از خدمتگزاران در این دو عرصه به خصوص از کسانی که به انگیزه اهداء خون و اهداء کلیه و به هموطنان خودشون بعد از فوتشون توصیه میکنند، تشکر و قدردانی داریم و برای همه بیماران اسلام از خداوند شفای عاجل را مسئلت داریم مناسبت سوم چهار شنبه 24 آبانه که به دو مطلب در این روز اشاره دارم یکی بزرگ داشته علامه تبا تبایی الله تعالی علیه شخصیتی که حق بزرگی بر حوزه های علمیه و دانشگاه ها داره در عرصه قرآنی تفسیر علمیزانیشان منبع معتبری برای مفسرین قرآنی به شمار میره شاگردان علامه امروز در حوزه ها و عرصه های مختلف ناشر علوم و معارف الهی هستند. بزرگداشت علامه در واقع ارزگزاری به تمامی عالمان دینی است از های این مرد بزرگوار پرهیز از پراکنده در حین درس و در مذاکرات بود پرهیز از هیاهو و جفسازی بود علامه با شاگردانش بسیار سمیمی و دوست بود مطلب دوم 24 آبان روز کتاب و کتابخانی و کتابدار هست نقش کتاب در انتقال علوم بر کسی پوشیده نیست. کتاب محصول تجربه‌های بشری و خلاقیت های ذهنی و های درازمدت انسان بر اساس فکر و اعتقادات و متون هست انتخاب این روز به خاطر ارزش والای کتابخانی در جامعه است. کتاب معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترسه که بی ادعا بدون تکلف و مننت آنچه را که داره در اختیار خواننده اش میگذاره. کتابخانه هم در واقع معبد و محراب پاکی برای علمندزی اهل علم به شمار میره و کتابداران هم، خدمتگذاران این معبد و محراب هستند آخرین مناسبت هفته وقفه هر ساله با فرارسیدن هفته آخر ماه سفرال مزفر نسبت به این کار ارزشمند و تأثیر در جامعه تذکرات و توصیه به مردم عزیز میشه چون وقت ارتباط تنگا تنگی با مصالح عمومی و خدمت به جامعه داره در قرآن کریم از این عمل به عنوان صدقه احسان بر و انفاق یاد شده ولی در روایت و عنوان وقت هم آمده است در تقه برای وقت احکام و مقرراتی بیان شده انشاءالله مردم عزیزمان متمکنین در این امر خدا پسندانه سهیم بشن از متولیان و متصرفان موقوفها ها میخوام که نسبت به موقوفه ها وظیفه شرعیشون عمل کنم اما درباره 40 پیاده روی و زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اولین کسی که در این راه قدم گذاشت جناب جابر صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که به همراه رفیق و عالم و فاضل خودش جناب عطیه به این سفر اقدام کرد جابر بن عبدالله انصاری پدرش از بزرگان اسلام از سابقون از در دو جنگ مهم پدر جابر شرکت داشته در جنگ سرنوشت ساز بدر و اهود و در همین جنگ اهود هم به شهادت رسید جابر در نزد رسول خدا مقام بلندی داشت اون مثل حضرت سلمان به مقام منا اهل البیتی نائل آمد پیامبر به جابر بشارت داد یا جابر انت منا، ابغض الله من ابغضك و احب من احبك جابر کسی که تو رو به خشم بیاره مبغوض خداست و کسی که تو را دوست بدارد محبوب خداست زیارت جابر در چهلمین روز شهادت ابا عبدالله علیه السلام یک زیارت معمولی و در یک فضای عادی نبود زیارت جابر در آن زمان زمان خفقان فساد و تقیان بنی امیه زیارتی سیاسی و انقلابی و پرخطر بود جابر با اقدام به زیارت سیدالشهدا علیه السلام هایگزار شکستن حیمنه بنی و شخص یزید ابن و معموران او بود جابر زیارتش مخفیانه و سریع و بی تشریفات نبود او ابتداعا در آب فرات همان آبی که از فرزند رسول خدا من کردن نوشیدن آن را غص کرد بعد شده مثل حاجیان احرام بست خودش رو معتر کرد با قدمهای آهسته به طرف مزجع شریف و قبر متحر عبا عبدالله به راه افتاد در مسیر ذکر خدا می گفت شده جابر خاک هایی رو که در مسیر بود بو می کرد تا ببیند کدام خاک بوی حبیبش حسین را میدهد. وقتی قبر متحر رو کرد و عطیه گفت دست مرا روی قبر حسین بگذار وقتی دستش به خاک قبر متحرف افتاد از شدت اندوه بیهوش شد آری، به تعبیر رسول خدا این لقتل خسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و عبدا این روزی پیام دیدن حسین داره میاد ایشون رو دامن خودشون دادن و این جمله رو فرمودن اِنَّ لِقَتْلِ حُسَيْنِ حَرَارَتًا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و عبدا شهادت عبا عبدالله الحسین آتشی در دل مؤمنان انداخته که هرگز سرد نمی شود بعد قیامور فرمود بلا یز پروهو مؤمنون الا بکا هیچ مؤمنی از حسین یاد نمی کند الا که گریش میگیرد مردم شما برای کدام عزیزی که از دست رفته بعد از هزار و چند سال این آدش و و مراسم به پا تنها مصیبت ابا عبدالله که آتش به جانها انداخته عتی جابر رو به هوش آورد وقتی به هوش آمد سه بار جابر مولایش رو صدا زد همان‌گونه که امروز شما به یاد اون شخص بزرگ و به یادگار از جابر آقا را صدا میزنید سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین بعدش گفت حبیب لا و حبیبه آیا دوست جواب دوستشو نمیده جابر خودش جواب خودش رو در قالب یک روزه کوتاه داد سدازت چگونه جواب دهی که خون از رگه گلویت بر سینه و شانه اتفا رو ریخته و میان سر و بدن ات جدایی افتاده بعد جابر چند جمله از فضائل و مناقب حضرت رو بیان کرد و زیارت نامه آنگاه به سمت بابور رفت. اونها رو هم تمجید و تعریف کرد و زیارت نامه از موضع گیری اصحاب عبا عبدالله و دفاع از حضرت سید و شهدا و حقانیت راه اونها و شجاعت و مجاهدت و مزدومیت اونها یاد کرد در زیارت شهدا جناب جابر خودش رو شریک با اصحاب امام حسین در نصرت عبا عبدالله علیه السلام دانست اتیه تعجب کرد که چگونه ما بدون جنگیدن بدون سختی کشیدن میتونیم شریک با اصحاب امام حسین باشیم از جابر علت این مطلب رو سوال کرد جابر گفت عتی از حبیب خود رسول خدا شنیدم که فرمود هر کس قومی را دوست بدارد با آنها محشور میشود و هر کس عمل قومی را دوست بدارد در آن عمل با آنها شریک است بعد جابر گفت قسم به خدایی که محمد را بی‌روسی فرستاد نیت من و اصحابم همان نیت امام حسین و اصحاب اوست. آری از آن روز حرکت معنوی سیاسی و انقلابی جابر و همراهانشون نه تنها به عنوان یک سنت خشک و خالی بلکه به عنوان یک ارزش کلقی شد تا پیش از آن با هدایت ائمه اطهار علیه السلام بر این حرکت عظیم یعنی زیارت ابا عبدالله و قدم نهادن در راه زیارت ابا عبدالله و ثواب گام هایی که در اون راه برداشته میشن ائمه تاکید داشتند و شیعیان هم الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشتند همینجا از همه کسانی که در راه اقامی ازای سید و شهده سلام الله علیه در طول سال به خصوص در ماه محرم و و بالاخست در ایام اربعین شهادتون حضرت قیام کردن راه به کردن از همه حیات و ستادها و ستادهای مردمی به خصوص ستاد مردمی مسلای قصد قوم و همچنین چهل و دو موکبی که از مستان قوم تنها سایر نقاط کشور هم موکبهای فراوانی فرستادند و همچین از دستجاد و آز مدهان، مدیه سرایان، بانیان خیر و رسانه هایی که این مراسم عظیم و الهی رو پوشش دادند تشکر میکنم گرچه رسانه های این مراسم عظیم رو سانسور کردند ولی امسال عاشقان عبا از پنجاه کشور جهان در این راهپیمایی حضور داشتند فیلم و عکس گرفتن همینها رسانه های حسینی برای جهانیان هستن آری امروز حسین علی السلام برای جهان شخصیتی شناخته شده و گذاره نقل کردند هنگامی که وجود مقدس حضرت بقیۃ الله العظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیایند خود را به عنوان منتقم خون سید و معرفی می کنن. معلوم میشه که در عصر ظهور ولیه است سلام علیه شخصیت حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام برای همه جهان شناخته شده است و این راه پیمایی اربعین و ازاداری های شما مردم زمین سازه آن ظهور موغود هست ننگ و نفرین و کسانی که همچون کفار و مشرکین و وهابی ها از حماسه اربعین حسینی تحلیل و برداشت غربی و صهیونیستی آمریکایی دارند امروز علی رغم توطئه آمریکایی ها و صهیونیست ها و وهابی ها و داعشیهای های وهابی عشق و محبت حسین علی السلام در قلب مشتاقان ابوالعبدالله علیه السلام رو به افضایش از شما ملاحظه فرمودیدون کسانی که نتونستن برن هربعین کربلا در شهرها راه پیمایی به سوی مکانهای مقدسی رو ترکیب دادن در قوم از حرم متحر به مسجد مقدس جمکران در تهران به طرف حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام و دانشجویان عزیز و غیرتمند و ولایی ما به سوی دفتر مقام معظم رهبری راه پیمایی داشتن بنابراین این ولایت ولایتمدار ما تحت تأثیر هیچ توطعه و فتنه و آشوبی قرار نمیگیره و دست از راه و رسم و زیارت حسینی بر نمی دارد و به فضل الهی و با هدایت و رهبری زعیم عالم اسلام حضرت امام سید علی حسینی جیل به ترویج از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم راه و رسم حسینی ادامه خواهد داد و از نصرت و حمایت مظلومان جهان به کوری چشم آمریکا و سهیریسا و وهابی ها به خصوص مردم عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن میانبار دست بر نخواهیم داشت و به تمام دنیایی که قد برافراشته تا با ایران و جمهوری اسلامی ایران به مخالفت برخاسته و برخیزد و توطئه و فساد کنه اعلام میکنیم. اکنون که شما با تمام وجود علیه اسلام و قرآن و اطرت بیام کرده اید ما هم چاری کردن ریشه فتنه و فساد داخلی و خارجی شما در منطقه و در جهان از پای نخواهیم نشد. پایان وفات مادر گرامی صدیق مکرم حضرت آیت الله مدرسی که اخیراً به رحمت خدا رفتن رو بهشون تسلیت میگیم و برای اون مرحوم علو به درجات رو مسئلت داریم اللهم انصول الاسلام و اهله و اخضل الکفر و اهله اللهم عجل ولی الفرج و العافیت و اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المؤمنات و المسلمین و المسلمات روح متحر امام، ارواح متحر شهیدان، مراجع مازین، امام جمعه من، حضرت آیت الله مشکینی و همه ی از اهل ایمان به خصوص شهداء مزدوم مدافع حرم با اولیاء محشور بفرما قربردگار حاجات این امت ولائی و حزب الله را برآورده به خیر بگردان مریضان اسلام جانبازان عزیز شفا و سبب رحمت بفرما جامعه و جوانان ما را بر صراط مستقیم اهل بیت ثابت قدم بدار مشکلات دولت و ملت را به فضل و کرمت برطرف بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کوفوًا احد صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و الله